از همون ابتدای قرن اول کسانی بودند که نمیخواستن باور کنند که خدای مهربون بتونه هم رحمت نشون بده و هم داوری کنه. دوستای عزیز، به کلاس دیگه از دانشکدی کچاک کتاب مقدس خوش اومدین. ها قبل، ما بررسی کتاب مقدس از کتاب پیدایش رو شروع کردیم. ما در جلسه بعدی، به انتهای کتاب مقدس خواهیم رسید و، کتاب مکاشفه رو با هم بررسی خواهیم کرد. آخرین کتاب از کتاب مقدس. اما قبل از اون به کتاب کوچکی یهودا نگاه خواهیم کرد. یهودا سخنان تندی برای کسایی داشت که تعلیم میدادن که داوری خدا چیزی خیالیه. بیاد با هم به درس امروز معلممون گوش کنیم. قبل از اینکه شروع به بررسی کتاب مکاشفه بکنیم کتابی که همه بی سبرانه در انتظارش بودید مایلم که بر یکی از کتاحترین کتاب های عهد جدید تمرکز کنیم و اونو مورد بررسی قرار بدیم رساله یهودا رساله یهودا رساله کوتاه هست که بلافاصل بعد از نامه سوم یوحنا در عهد جدید اومده رساله یهودا کتابی یک بابی هست که از بسیاری جهات با باب دوم رساله ی دوم پتروس مشابهت هایی داره دقدقه و نگرانی کسی که این کتاب رو نوشته بدعتگزاران یا معلمین دروغین هست. مردی به نام یهودا رساله یهودا رو نوشته. نام یهودا یکی از اسامی رایج در عهد جدید بود. وقتی محققین بر روی اسامی کسانی که در عهد جدید یهودا نام داشتند تحقیق می‌کردند و وقتی ملاحظه کردند که این مرد میگه برادر یعقوب هست به این نتیجه رسیدند که این مرد هم یکی دیگر از برادران ناتنی زمینی عیسی بوده یعنی او برادر یعقوب هم بوده همون مردی که رساله یعقوب رو نوشته در جدید در انجیل مرقس باب شش آیه سه شرحی می بینیم که در واقع مردم از این بحث می کردن که ایسا هم مردی مثل دیگران هست عیسی برادران و خواهرانی داشت و به این دلیل اونها می این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست مگر خواهران او در بین ما نیستند محققین معتقدند همون یهودا که در انجیل مرقس باب شش آیه سه نامش ذکر شده نویسنده ی رساله کوچک یهودا هست یهودا وقتی این رساله کوتاه رو می نویسه به ما میگه که در نظر داشته شرحی در مورد نجات بنویسه اما مشکلی وجود داشت که باعث شده اون نظرش رو تغییر بده اون مشکل در دوره عهد جدید در دوره عهد قدیم و بعدها در طی تاریخ کلیسا وجود داشته این مشکل معلمین مرتد بودند. کسانی که حقیقت رو تعلیم نمیدادند. این ارتداد خاص همون چیزی هست که دیتریش بانهوفر به اون فیض ارزان میگه. اون همیشه با ما بوده اون تعلیمیه که میگه چون خدا خدای بخشندهیه هرگز فرزندان خودش رو تنبیه نمیکنه. او هرگز کسی رو از نجات یا کلیسا رد نمیکنه. از این رو گفته شده که یهودا تصمیم گرفت به این نوع خاص از ارتداد اشاره کنه که میگه شما میتونید هر کاری که دلتون میخواد بکنید و خدای بخشنده هرگز کاری در مورد اون نمیکنه. یهودا به نظر میرسه که بسیار نگران این نوع تعالیم بدعتی هست و بیشتر از اون نگران کسانی هست که تحت تاثیر چنین تعالیمی قرار گرفتند یهودان گران کسانی هست که به نظر میرسه از فیض خدا دور شده اند و یا احتمالاً به خاطر تعالیم بدعتی در مورد فیض ارزان از ایمان افتاده اند یهودا مستقیما به این مشکل اشاره میکنه اونجا که میگه برادران من میخوام براتون روشن کنم که وقتی مردم هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن خدا بی تفاوت یه گوشه نمیشینه یهودا مثالهایی میزنه و می نویسه می یادآور شوم که خداوند با وجود آن که قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون آورد بعدها آن کسانی را که ایمان نداشتن نابود ساخت این بر یکی از ترسناکترین باب در کل کتاب مقدس تمرکز میکنه. باب چهاردهم کتاب اعداد اونجا که گفته شده چیزی بین دو یا سه میلیون نفر در بیابون با مرگ مواجه شدند. و بعد از اینکه لاشخورها جسد اونها رو خوردن، استخوان در صحرا سفید شد تنها به این دلیل که به خدا باور نکردند و سرزمین وعده را تصاحب ننمودند در کتاب اعداد میخونیم که اسرائیلیها ها به مدت چهل سال در بیابان دور خود میچرخیدند و سرگردان بودند اونها ایمان نداشتند که وارد سرزمین وعده شوند و اون رو مطالبه کنند ما غالبا تعجب می کنیم که چرا اونها وارد سرزمین وعده نشدند و اون رو تصاحب نکردن لازمه ی حمله کردن و در هم شکستن سنگرها و موانعی که علیه شما ساخته شده اند ایمانی بزرگ است. بنابراین این قوم به مدت چهل سال در بیابان دور خود می چون ایمانی نداشتند که با اون به کنان حمله کنن خدا ده بار به طرز موجز آسایی خودش رو بر اونها ثابت کرد و سعی کرد اونها رو به ایمان بیاره اما اونا به هیچ وجه به چنان ایمانی دست پیدا نکردند و بالاخره او در باب چهاردهم اعداد به اونها گفت شما به زمینی که درباره آن دست خود را بلند کردم که شما را در آن ساکن گردانم هرگز داخل نخواهید شد مگر کالیب ابن یوفن نه و یوشع ابن نون اما اطفال شما که درباره آنها گفتید که به یغما برده خواهند شد ایشان را داخل خواهم کرد و ایشان زمینی را که شما رد کردید دانست. خدا برای دو نفر استثناء قائل شد کالیب و یوشع یهودا میخواد که ما اون باب ترسناک رو در عهد قدیم به خاطر بسپاریم. اعداد 14 که در اونجا خدا اجازه داد یک نسل کامل از قوم او حلاک شوند اگرچه اونها قوم برگزیده بودند خدا اعلام کرد اونها انتخاب شده بودند و دیگه منتقب نیستند از این رو اجازه داد که اونها در صحرا حلاک بشند یهودا اون نسلی رو که در صحرا هلاک شدند به ما یاداوری میکنه و معلمین دروغین مرگ اون نسل رو به یاد ما میاره این معلمین دروغین به مردم درباره خدایی میگفتند که میتونند او رو نادیده بگیرند و هر کاری میخوان بکنند و به اونها میگفتند که خدا در این مورد کاری نخواهد کرد چون شما قوم برگزیده هستید خدا رو چنان تعلیم میدادند چنان که گویی خدا پدربزرگ پیر تفاوت و بی ای هست که یک گوشه نشسته و کاری به کار کسی نداره. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که جنبه دیگری از شخصیت خدای مهربان داوری هست. شخصیت او مثل یک رنگین کمان هست. شخصیت خدا از رنگ‌های بسیاری ساخته شده نه فقط یک رنگ. خدا قابلیت محبت داره چون که محبت ماهیت وجود خداست. اما خدا قابلیت غضب و داوری هم داره. چون او خدای قدوس است مثال دیگری که یهودا به ما میده از فرشتگان سقوط کرده است یهودا میگه همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند در تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند خدای کناری نمیشینه که فرشتگان نافرمان را تماشا کنه و هیچ کاری در مورد فرشتگان سقوط کرده انجام نده و بالاخره سومین مثالی که یهودا آورده صدوم و قموره هست که چطور خدا اونها رو در آتش و گوگرد نابود کرد خب یهودا به این معلمین دروغ و کسانی که به تعالیم دروغ فیض ارزان اونها باور کردن سه مثال میزنه فیض ارزان نیست نجات ارزان نیست شما نمیتونید با تمام طلاها و نقره های زمین نجات رو برای خودتون خریداری کنید خدا باید نجات رو برای شما بخره وقتی شما به خدا ایمان آوردید و وارد نجات شدید از یک نظر نجات شما برایتان خزینه‌ای دربر نداشته شما با ایمان نجات رو پذیرفتید تنها ایمان به عیسی مسیح به مرگ و قیام او میتونه نجات بده اما همونطور که در کتاب یعقوب دیدیم که توسط برادر یهودا نوشته شده ایمان نجات بخش هرگز تنها نیست همیشه یک زندگی متعهدانه و با اطاعت به ایمان اعتبار می‌بخشه. به نظر می‌رسه که این تأکید پیام رساله کوچک یهودا نیست. است. وقتی یهودا این معلمین مرتد رو توضیح میده، بسیار واضح صحبت می‌کنه. همونطور که در باب دوی رساله دوم پتروس هم می بینیم. این اشخاص مانند چشمه های خشکیده و یا عبر هستند که جلوی بادهای های رانده می و تاریکی قلیز دوزخ در انتظاران هاست. آیا تا حالا از چنین واعزینی معایزه شنیدید؟ شاید شما مثل زمین تشنهای بودید، مانند زمین سوختهای بودید و تشنگی عظیمی داشتید که کلام خدا را بشنوید و این واعزین در معایزه هایشان مثل عبرهای بیباران بودند و شما فکر کردید که حتما خواهند بارید. وعده های زیادی دادند. ولی بعد از پراکنده شدن ابر متوجه شدید که یک قطره هم نباریده. شما چیزی از اون موعظه نگرفتید که راستی از خدا نبوده و تشنگی شما رو سیراب نکرده. یهودا میگه این معلمین دقیقا مثل ابرهای بیباران هستند. یهودا همینطور میگه این معلمین دروغین مانند امواج متلاتم دریا هستند و اعمال شرماورشان مانند کفهای کسیفی ظاهر میشود. اونها مانند درختانی هستند که در هیچ فصلی میوه نمیدهند. این ای هست که عیسیا برادر یوحنا مرتبا از اون استفاده میکرد وجود یا عدم وجود میوه نشان دهنده ای ایمان و یا بی ایمانی هست. درختانی هستند که در هیچ فصلی میوه نمیدهند و از ریشه کنده شده و کاملا مرده و بعد اینجا شرح دیگری هست او میگه معلمین دروغین مانند ستارگان سرگردانی هستند که تاریکی دوزخ تا به ابد در انتظار آنها هست. این در موازات سرنوشت فرشتگان سقوط کرده هست. این شیوه آشکاری هست که یهودا برای توصیف معلمین دروغین به کار برده. از این گذشته یهودا بسیار نگران قربانی های این معلمین دروغین هست. یهودا میگه باید سعی کنیم این اشخاص رو نجات بدیم و شاید بتونیم بعضی از آنها را از آتش خلاص کنیم. اما باید سعی کنیم بدون اینکه خودمان به اونها را از آتش نجات بدیم. بعد یهودا نصیحتی برای کسانی داره که نجات یافتن نصیحتی ساده برای ثابت ماندن در ایمان. من این نصیحت یهودا رو خیلی دوست دارم. یهودا میگه ای عزیزان، شما باید در ایمان بسیار مقدستان ثابت باشید و در آن پیشرفت کنید. با هدایت روح القدس دعا نمایید و بعد شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید، تا او در رحمت خود حیات جاویدان به شما انایت فرماید. خود را در محبت خدا نگاه دارید شما باید همیشه درون مرز باقی بمونید جایی که محبت خدا را دریافت کنید و برکت بگیرید یهودا با دعای خیر و برکت نامش را تموم میکنه شاید گاهی شنیدید که شبانتون این دعا رو به عنوان برکت بر شما هم اعلام کرده یهودا به روشنی اعلام میکنه که خدا قادر ما را از لغزش و سقوط حفظ کنه خواه سقوط به خاطر معلمین دروغین باشه یا هر چیز دیگری او می نویسه اکنون بران کسی که قادر است شما را از لغزش نگاه دارد و شما را بی با و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد یعنی بر خدای یکتا که به وسیله عیسی مسیح خداوند ما ما را نجات داده است جلال و عظمت قوت و قدرت باد از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد آمین با این دعای برکت میخوام به بررسی اجمالی این رساله کوچک که یهودا خاتمه بدم چون داریم به پایان بررسی کل کتاب مقدس نزدیک میشیم باید از شما سوال کنم که آیا خود شما شخصا به عیسی مسیح به عنوان منجی خود اعتماد کردید و آیا او را به عنوان پادشاه و خداوند زندگی خود پذیرفتید یا نه شما رو تشویق می کنم که تا فرصت باقی هست، سرتون رو خم کنید و به مسیح قیام کرده و زنده بگویید که همین الان او رو به عنوان منجی خود میپذیرید و او رو به عنوان شاه و خداوند زندگیتون انتخاب می کنی. به او بگویید که می خواهید باقی عمرتان را برای او زندگی کنید از او سؤالی رو بپرسید که پولس رسول سفر ایمانی خودش رو با اون سؤال شروع کرد. خداوندا از من می خواهید چیکار کنم. حالا میخوام بررسی آخرین کتاب از کتاب مقدس رو شروع کنیم کتاب زیبای مکاشفه. اینجا به کتابی می رسیم که خیلی ها از همون ابتدای بررسی کتاب مقدس در انتظارش بودند دلایل متعددی هست که چرا کسانی که کتاب مقدس را تدوین می‌کردند توسط روح القدس هدایت شدند کتاب مکاشفه را به عنوان آخرین کتاب الهامی از این گنجینه 66 تایی مقدس قرار بدن یکی از دلایلی که کتاب مکاشفه را به عنوان آخرین کتاب در این مجموعه مقدس قرار دادند اینه که درک این کتاب بسیار مشکل هست مکاشفه مشکل ترین کتاب در بین کل کتاب کتاب مقدسه پیش نیاز درک مکاشفه فهمیدن 65 کتاب دیگر هست ما خواهیم دید که این حقیقت داره کلمه مکاشفه برگرفته از کلمه یونانی آپوکالیپسس هست که به معنی کنار زدن پرده هست مفهومش اینه که چیزی پشت پرده ای زخیم هست و شما با درک خودتون هرگز نمیتونید بعد از یک میلیون سال هم حدس بزنید پشت اون چیه؟ بنابراین خدا پرده رو کنار میزنه و اجازه میده ببینید چی پشت پرده هست. مکاشفه به لحاظ علمین چیزی هست که حالا شما میدونید چون خدا پرده رو کنار زده و اجازه داده شما ببینید. دلیل دیگری که چرا این کتاب در آخر کتاب مقدس قرار گرفته اینه که دو عرصه از حقیقت هست که اگر ما مکاشفه نداشتیم چیزی در نمیدونستیم. دو عرصه از حقیقت عبارتند از روشی که کتاب مقدس شروع شده و روشی که اون خاتمه یافته کتاب مقدس با کتاب پیدایش شروع میشه وقتی ما کتاب پیدایش رو بررسی میکردیم دیدیم که کلمه پیدایش مثل کلمه آغازها یا ابتداها هست پیدایش مربوط به آغاز همه چیز هست ابتدای همه چیز عرصه ای از حقیقت هست که اگه خدا به ما مکاشفه نمیداد نمی تونستیم چیزی در موردش بدونیم. خدا متفکر بزرگی رو فروتن کرد، مرد روحانی بزرگ خدا به نام ایوب رو با طرح این سوال فروتن ساخت. وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. معنی واقعیش اینه که ایوب تو از کجا میدونی مگر تو اونجا بودی؟ ایوب طوری در مورد خلقت صحبت کرده بود چنان که گویی چیزی در موردش میدونست اون سوال بسیار فروتن کننده ای بود که خدا از ایوب پرسید به اون سوال فکر کنید آیا وقتی خدا زمین و آسمون رو خلق می کرد شما اونجا بودید؟ خب پس از کجا میتونیم این همه در مورد آفرینش بدونیم اگه اونجا بودی به ما بگو چطور بوده کسی به جز خدا اونجا نبوده این البته نشون میده که حتی دانشمندان هم نمیتونن به طور یقین و با اقتدار در مورد موضوع آفرینش صحبت کنند گرچه اونا غالباً سعی میکنن بفهمند آفرینش چگونه شروع شده روش دانشمندان توسط انجام آزمایشات و مشاهدات و بعد کاربرد هست. دانشمند مشاهده میکنه دست به آزمایشات میزنه ملاحظه میکنه و بعد نظریه رو کاربردی میکنه برای اینکه چیزی کاربرد علمی داشته باشه یا برای اینکه به نتیجه علمی دست پیدا کنه یه دانشمند باید اون سه مرحله رو پشت سر بذاره او باید اونجا بوده باشه باید آزمایش کرده باشه و باید مشاهده کرده باشه تنها در این صورت میتونه به نتیجه علمی دست پیدا کنه موضوع خلقت با عمل مستقیم خدا واقعا در عرصه کار دانشمندان نیست همونطور که در موقع بررسی دو اول پیدایش دیدیم فیلسوفا میتونن در مورد ابتدای هر چیزی دلیل فلسفی بیارن من وقتی دانشگاه می درس فلسفه گذروندم استاد در پایان یک دوره یک ساله این جمع رو کرد. فلسفه میگوید من نمیدونم تو نمیدونی کس دیگه ای هم نمیدونه اما فکر کردن به اون هوشمندانه هست. فیلسوف میتونه می تونه خودش رو در مورد آفرینش به ما بده و در تجزیه تحلیل نهایی میتونه بگه من نمیدونم تو نمیدونی کس کس دیگه ای هم نمیدونه. همه ما در مورد اون بیا هستیم. اما فکر کردن به اون هوشمندانه هست. تنها یک نفر هست که میتونه، با اقتدار در موضوع آفرینش صحبت کنه و اون نبی هست که از خدا مکاشفهی دریافت کرده بعد از اون میتونه با اقتدار بگه من مکاشفهی دریافت کردم شاید شما بگید او چنین چیزی دریافت نکرده و من این رو باور ندارم این همون جاییه که ایمان وارد میشه شما یا باور دارید یا باور ندارید که کتاب مقدس مکاشفه خدا هست اما مردانی که کتاب مقدس رو نوشتن به ما میگند که مکاشفه ای از خدا دریافت کردند. بسیاری از ما باور داریم که کتاب مقدس مکاشفه ای از خدا هست. همونطور که در مقدمه کتاب مقدس اشاره کردم، کلمه مکاشفه به همه روش های گوناگونی اطلاق میشه که خدا توسط اونها با انسان ارتباط برقرار میکنه. کلمه الهام یا وحی واجهی هست که روش خاصی رو توضیح میده که در اون خدا توسط کلامش با انسان ارتباط برقرار میکنه. در این زمینه به کتاب مقدس به عنوان مکاشفه خاص خدا اشاره شده. وقتی کتاب مقدس رو میخونید متوجه میشید که کتاب مقدس با صحبت یک نبی شروع میشه که میگه من مکاشفه ای از خدا دریافت کردم. خدا پرده را کنار زد و به من نشون داد که همه چیز چگونه آغاز شد. و اگر خود خدا پرده را کنار نزده بود ما هرگز یقینا نمیتونستیم بفهمیم که همه چیز چگونه آغاز شد. ارسه دیگر حقیقت که ما بدون مکاشفه یقینا چیزی در مورد اون نمیدونستیم اینه که همه چیز چگونه به پایان خواهد رسید چه چیزی در دنیا اتفاق خواهد افتاد اگر خدا به شما مکاشفه نده چطور میتونید بفهمید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بنابراین کتاب مقدس با یک نبی یوحنای رسول به پایان میرسه که میگه خدا به من مکاشفه ای داد در جزیره به نام پاتموس مقیم بودم آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت و خداوند به من مکاشفه ای داد. او پرده را کنار زد و مکاشفه ای از عیسی مسیح به من داد. به غیر از مکاشفه عیسی ای مسیح خدا مکاشفه ای هم در مورد آینده به من داد. خدا به من نشان داد که همه چیز چگونه پایان خواهد یافت. او به من نشان داد که در جهان چه اتفاقاتی خواهد افتاد. کتاب مقدس با مکاشفه ای در مورد آغاز جهان شروع میشه و با مکاشفه ای در مورد چگونگی پایان جهان خاتمه پیدا میکنه وقتی به بررسی کتاب مکاشفه یوحنا میپردازیم که حقیقتا مکاشفه ای از عیسی مسیح هست که به یوحنا داده شده دوست دارم که تکلیفی به شما بدم یادتون باشه که هدف از بررسی کتاب مقدس اینه که هر کتاب از این مجموعه رو مرور کنیم هر کتاب رو معرفی کنیم هر کدوم از کتابها رو مورد ملاحظه قرار بدیم و به شما نشون بدیم که به هر کدوم از کتابها چطور بپردازید تا اینکه بتونید از هر کتابی از کتاب مقدس چیزی برای خودتون به دست بیارید. مهمترین بخش از این دوره کمی بعد از اینکه آخرین جلسه این دوره رو تموم کردیم شروع خواهد شد. این یک حقیقته چون دعای من اینه که پایان همه این تعالیم شروعی باشه برای مطالعه شخصی شما از کتاب مقدس. کتاب مکاشفه این طور شروع میشه این مکاشفه ای است که خدا به عیسی مسیح داده است تا آنچه که باید به زودی رخ دهد به بندگانش نشان دهد او فرشته خود را به نزد بنده خیش یوحنا فرستاد تا این چیزها را به او نشان دهد یوحنا با بیان آنچه شنیده و دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح گواهی میدهد. بر طبق روایات گفته شده که یوحنا در روغن جوشانده شد اما نمرد شایعه شده بود که یوحنا هرگز نخواهد مرد چون عیسی به پتروس گفته بود اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد بنابراین روایت شده که چون رومیان او را رو در روغن جوشاندند و او نمرد تصمیم گرفتند که او را به جزیره پاتموس تبعید کنند تا در اونجا بمیره بعضی ها میگند که او در اونجا آزاد بوده و بعضی میگویند که او در اونجا در بخشی از اردوگاه اسرا در معدن نمک کار میکرده ما از هیچ کدوم این چیزها مطمئن نیستیم تمام اطلاعات ما بر مبنای روایات هست به هر حال میدونیم که یوحنا به خاطر ایمانش در اونجا بوده چون خود او در باب اول همین کتاب اینو به ما گفته در همونجا بود که یوحنا ای از عیسی مسیح رو تجربه کرد خدا پردر رو کنار زد و به یوحنا ای از عیسی مسیح داد حالا این درست نیست که به این کتاب کتاب مکاشفه بگیم چون جمله نخست کتاب از این کتاب به عنوان مکاشفه عیسی مسیح یاد کرده اون از چندین مکاشفه تشکیل نشده و فقط یک مکاشفه هست مکاشفه عیسی مسیح این مکاشفه در این شکل ادبی به یوحنا داده شده اون توسط فرشته ای به یوحنا تفهیم شده کلمه تفهیم میتونه اینطور تفسیر بشه که کتاب به شکل نشانه ها بوده یعنی این کتاب به زبان نشانه ها یا زبان رمزی بوده. یهودیان زبان نشانه های زیبایی داشتن و شما میتونید اینو در کتاب مکاشفه ببینید. یوحنا همیشه به زبان نشانه مینوشته. یوحنا انجیلش رو به زبان نشانه ها نوشته اما اینجا ما مکاشفه ای داریم که کتاب نشانه هاست. وقتی میخواهید مکاشفه رو مطالعه کنید من توصیه میکنم که اینطور مطالعه کنید. اول کاغذی بردارید و جدولی با پنج ستون تهیه کنید. در اولین ستون از این جدول کلمه نشانه را بنویسید. وقتی مکاشفه را نشانه نشانه‌های کتاب مکاشفه را در ستون اول جدول وارد کنید. مثلا اسب سفید، دریای بلورین، چهار وحش، هفت چراغدان و غیره و غیره. وقتی کتاب مکاشفه را میخونید، با هر نشانه‌ای مواجه شدید، اون رو در ستون اول وارد کنید. در بالای ستون دوم بنویسید مکاشفه شخصی از خداوند روح القدس بخواهید پردر رو کنار بزنه و به شما نشون بده معنی علامت کتاب چیه و مکاشفه شخصی خودتون رو از هر نشانه در ستون دوم وارد کنید نمادها یا نشانه ها نمادهای کتاب مقدسی هستند بسیاری از اونها رو در جایی از کتاب مقدس میتونید پیدا کنید و اگه بدونید معنی اونها در اونجا چیه این میتونه به شما کمک کنه که معنی اونو در کتاب مکاشفه هم درک کنید در بالای ستون سوم بنویسید کتاب مقدس در این ستون جایی که اون نشانه ها در کتاب مقدس آمده قید کنید در این خصوص کتاب کشفولایات میتونه به شما کمک کنه تا جای اون نشانه ها رو پیدا کنید بسیاری از مردان روحانی خداشناس تفسیرهایی برای کتاب مکاشفه نوشتن و آنچرا روح القدس در مورد معانی این نشانه ها بر اونها آشکار کرده با ما در میون گذاشتن. اگر به تفسیرهای خوب دسترسی دارید در ستون چهارم معانی نشانه ها رو بر اساس اون تفسیرا یادداشت کنید بعد در ستون پنجم این جدول نتیجه گیری نهایی را یادداشت کنید اگر این تکلیف رو کاملا انجام بدید در خاتم شاید 150 صفحه جدول در مورد کتاب مکاشفه داشته باشید برای انجام این تکلیف نهایت سعیتون رو به کار بگیرید و این کار دیدگاه وسیعی در مورد این کتاب جذاب به شما خواهد داد در دانشکده من درس مکاشفه رو خوندم و این تکلیف به تنهایی نزدیک 150 صفحه شد وقتی کتاب مکاشفه رو میخونید باید چیزی رو در مورد این زبان نشانه ها درک کنید تقریبا مثل این هست که این کتاب به صورت رمزی از طرف خدا برای قوم خدا نوشته شده برای درک این پیام رمزی شما به کلید رمزگشایی نیاز دارید کلیدهایی به شما خواهم داد که رمز کتاب مکاشفه را با اونها باز کنید اولین کلید روح القدس هست. شما بدون یاری روح القدس نمیتونید چیزهای روحانی رو درک کنید این مخصوصاً در مورد درک این کتاب صدق میکنه این کار در صلاحیت روح القدس هست که چیزهای روحانی رو به ما تعلیم بده در بالاخانه عیسی گفت که این کار مخصوص روح القدس هست که امور و آینده رو به ما نشون بده و این کتاب چیزهای زیادی در مورد امور و آینده داره. منو و شما وقتی به این کتاب می‌پردازیم، باید کمک روح القدس رو داشته باشیم. روح القدس اولین کلیدی هست که رمز پیام مکاشفه رو باز می‌کنه. کلید شماره دو اینه که نشانه‌ها یا نمادها در کتاب مکاشفه نمادهایی کتاب مقدسی هستند. این کلید مهمی هست که به شما کمک می‌کنه کتاب مکاشفه رو درک کنید. اگر شما یک یهودی بودید و به عهد قدیم تسلط کافی داشتید این نشانه ها در مکاشفه برای شما چندان غریب نبود اما برای بسیاری از مردم که پیش زمینه ای از عهد قدیم ندارند درک این واژه ها بسیار سخت است مثلا در باب چهار مکاشفه دری به آسمان گشوده میشه که به ما اجازه میده آسمان رو ببینیم این یکی از معدود جاهایی هست که ما میتونیم آسمان رو ببینیم شخصی رو میبینیم که روی اون تخت نشسته و اون تختی که اون شخص بر روش نشسته به یشم و عقیق شباهت داره و گرداگرد اون تخت رنگین کمانی رو میبینیم که به زمرد شباهت داره اگر شما یک یهودی مسلط به عهد قدیم بودید یادتون میومد که در خروج بابه 28 ردایی که کاهن اعظم باید در خیمه پرستش و بعدها در معبد سلیمان میپوچید یک سینبندی داشت که چهار ردیف سنگ قیمتی بر اون نصب شده بود و در هر ردیف سه سنگ قیمتی وجود داشت که هر سنگی علامتی برای یکی از دوازده طایفه اسرائیل بود. اولین سنگ عقیق قرمز بود که نماد طایفه بزرگترین پسر اسرائیل بود، طایفه روبین. آخرین سنگ دوازدهمین سنگ یشم بود که نماد طایفه بنجامین بود. زمرد سبز هفتمین سنگ بود که نماد طایفه یهودا بود در ابری این اسامی معانی دارند. روبین یعنی اینک پسر من بنجامین یعنی پسر دست راست من و یهودا یعنی پرستش بنابراین در باب چهار وقتی این در درب آسمان گشوده میشه چیزی که به زبان نشانه به ما گفته شده اینه اینک پسر من پسر دست راست من او را بپرستی برای یک یهودی این زبان نشانه و بسیار زیبا هست. زبان نشانه یهودی زبانی با الهام روح القدس هست. شما از لحظه ای که کتاب مکاشفه رو باز می کنید با این زبان نشانه ی زیبا مواجه می شید. به طور خلاصه زبان نشانه پیغامی بود از طرف خدا برای قوم خدا به صورت رمزی. اگر انتظار دارید که این پیام را درک کنید باید با کلید رمزگوشای این زبان رمزی آشنا بشید. اولین کلید که حتی میتونیم بگیم شاه کلید هست روح القدس. شما نمیتونید این یکی رو نادیده بگیرید چون شما بدون روح القدس هیچ آیهی ای رو درک نخواهید کرد حتی انجیل یوحنا رو. اما به همراه روح القدس به عنوان شاه کلید کلید مهم بعدی که به شما کمک میکنه رمز این پیام زیبا رو باز کنید اینه که تمام این نمادها که در کتاب مکاشفه هست نمادهایی کتاب مقدسی هستند. اگر شما معانی اون نمادها رو در جای دیگر کتاب مقدس درک کنید برای درک معانی اون نمادها در پیام مکاشفه شانس بیشتری خواهید داشت. از این دو کلید استفاده کنید و ببینید آیا به شما برای باز کردن رمز پیام خدا که برای قومش نوشته شده کمک میکنه، این پیام زیبا در کتاب مکاشفه ایسای مسیح در انتهای کتاب مقدس آمده تکلیفی رو که به شما دادم فراموش نکنید کتاب مکاشفه رو مطالعه کنید و نشانه ها رو به همون ترتیبی که گفتم یادداشت کنید و از خدا بخواهید که معانی اونها را به شما نشون بده. خدا وعده داده به تمام کسانی که این کتاب رو مطالعه می کنند برکت خواهد داد عزیزان مرچکریم که با ما همراه بودید. امیدواریم که در سه در ساینده نیز با ما همراه باشید که بررسی آخرین کتاب از عهد جدید کتاب مکاشفه رو با هم به پایان خواهیم برد. تا برنامه بعدی به اون که قادره شما رو از سقوط حفظ کنه و شما رو بی عیب و بی لکه با شادی عظیم در حضور شکوه مند خدا حاضر کنه جلال باد. جلال ابدی. از آن تنها خدا و منجی ما ایسای مسیح. آمین.